سوره نوح هم از سوره های مکی هست من ربطش را قبلا خدمت شما ارز کردم که در سوره ملک خداوند بیان فرمود تصرفات و پادشاهی مال ماست برکات دهنده ما هستیم در سوره قلم خاندیم که اونها دوست دارن نرمش نشان بیدی شما هم نرمش شما نرمش نشان بیدی تا اونها هم نرم بیشند ولی شما اطاعت نکن در سوره الحقه تخویف خواندیم اونایی که قبول ندارند برای اونها عذاب است در سوره معارج زجر و توبیخ بود کسانی که عذاب را مسخره میکنند و میگوین عذاب بیار خدایا برای اونها زجر بیان فرمود و بعضم تخویف بیان فرمود در سوره نوح دلیل نقلی از پیامبر خدا از نوح نبی بر اثبات توحید میخانیم از نوح پیامبر بر اثبات توحید اینجا ما دلیل میخانیم ببینید نوح چطور تبلیغ کرد قوم خودش را و چه مواردی، چه مطالبی، چه مسائلی برای قوم بیان کرد خلاصه این سوره در این سوره دعوات نوح است از اول تا آخر و استکبار قوم و نمونه استیصال و عذاب خدا در همین قوم سوره بیان شده و ضمنان روش تبلیغ که نوح به چه صورتی تبلیغ کرد که برای من و شما مبلغین دیگر یک الگویی باشد در این سوره هم بیان شده. الله می فرماید انا ارسلنا نوحا الى قومه همان ما فرستاد نوح را به سوی قومش قومش هر پیغمبر به سوی یک قوم فرستاده شده اما رسول الله صلی الله علیه و سلام به سوی جمیع الناس به سوی کافۃ الناس فرستاده شده اما با چه مضمونی به نوح دستور دادیم چیکار کنه؟ ان انذر قومك انك بترسان ب بده قومت را من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قبل از انك پيشانها بي آياد عذاب دردناك بي والسلام تبلغ تبلغي نو قال يا قوم اني لكم نذير مبين اي قوم من من نظیر آشکارا هستم ترساننده آشکارا شما را از عذاب خدا می ترسانم چه مطالبه داری نو چی می خواهی الله که فقط و فقط الله را عبادت کنید و الدسوه یغوس و یعوق نصر این را عبادت نکنید فقط خدا را عبادت کنید و تقوه و از او بترسید این توحید است از خدا را عبادت کن از خدا بترس شرک نکن وبعد استهد رسالة وأطيعون ومرة إطاعتكنيت مرة إطاع ببني أسس الدين ست عشان توحيد فأعبد الله واتقوا رسالة وأطيعون وقيامة يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جل مستم ما بعدم بعد قيامة ميعاد خب خدام مي باششة برا فقط خدا را عبادت کردید و من پیامبر را اطاعت کردید خداوند به شما چی میده؟ یغفر لکم من ذنوبکم الله میبخشد گناهان شما این من من زایده هست گناهان شما را در صورت ایمان میبخشد و یؤخركم الى اجل مسمع و شما را مؤخر میکند محلت میده تا مدت معین تا مدتی معین این داشته باشید که اگر شما از من حرف شنوی داشته نباشید از اون مدت معین که عمر شما هست قبل از اون برای شما مرگ میاد این همون تقدیر معلق است این چیه تقدیر معلق که اگر این قوم ایمان آورد در این تاریخ عذاب نمیاد در این تاریخ مرگشون نم، فرا نمیرسد بیش سالی دیگه زندگی میکنم مثلا از میکنم همانطوری که خداوند با قوم یونوس کرد اما اگر ایمان نیاورد در همین تاریخ میمیرند بس ببینید بعضی تقادیر بستگی دارن به اینکه قوم چطور عمل میکند پس اینجا نو علیه السلام میگه که ويؤخركم الى اجل مسمى شما را می کند یعنی مهلت میده تا یک مدت معینی تا اون زمان شما زنده بعدم به مرگ طبیعی میرید می به شرطی که ایمان بیاورید ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر همانا اون مدت الهی اجل الله مراد موت است مرگ هست هرگا او بیایت لا يؤخر و مؤخر نمیشه اون تاخیر نمیشه لو کنتم تعلمون کا شما میدانستیم. قال رب انی دعوت قومی ليلا انجا نو علیه و انهره اینجا نوح علیه والسلام شکایت قومش را میکند پیش پروردگار اما در این شکایت شما میبینید که این پیامبر چقدر زحمت کشید سبحان الله همیشه وقتی که ذکر پیامبران می آید ما سطحی و سرسری از کنارش رد میشیم. همیشه میگم گیم نوصد نو سال تبلیغ کرد نوصد سال به نو گفتنش آسان است نوصد سال گفتنش آسان هست اما انسان فکر بکنه نوصد سال وقت کمی نیست یک عالمی خدمت میکنه گاهی اونم خدمتش در چه شرایطی هست امروز ماشاالله امکانات رفایی هیچی کم نیست تمام و خوراک برای تمام وسایل سردی و گرمی فراهمه تمام امکانات رفایی ولی 30 سال کار میکنه میگه من 30 سال کار کردم بعد از اون میگه من باز بازنشست میشم اما قربانی نبی خدا برین پیامبر خدا بیریم، 950 سال همیش کار کرد، همیش زحمت کشید، همیش جواب رد شنید، همیش مسخره شنید، همیش از مردم توپ و تشر شنید اما صبر میکنه آخر نو علیه و سلام پیش خدا شکایت میکنه این رو هم خدمت شما بگم که نو سالات و سلام ناومید نشد چون بعضی ها سوال می کنند که خب پیامبر چرا برای قوم عذاب خواست در ادامه شما می برای قوم خودش عذاب مطالبه کرد آیا درستیخ پیغمبر مطالبه بکنه عذاب؟ این پیامبر عذاب را مطالبه کرد و ناامید شد چون خداوند به او وحی کرد ما در سوره هود الله می خانیم و اوحی الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمند به سوی وحی شد از سوی پروردگار که ای نوح از این به بعد هیچ کسی دیگه ایمان نمیاره ایلا من قد آمن همین هایی ایمان آوردن بس دیگه کسی در تقدیرش ایمان نیست نوح وقتی که دید که دیگه کسی در تقدیرش ایمان نیست گفت تبلیغ بیشتر فایده نداره و این خطر است که همین هایی ای که ایمان آوردن همین ها را برگردانند، اینها دیگه بیشتر از این تحمل نمی کنند، اینا با پیامبر سختی تحمل کردن ولی بیشتر تحمل نمی کنند، لذا الله عز و جل فرمود که ایمان نمی آورند بعد از اون نه شکایتش را شروع کرد. ببینید در این شکایت معلوم میشه که چقدر این پیامبر زحمت کشید قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا گفت ای رب من ای پروردگار من من دعوت کردم قومم را شب و روز دعوت دادم تعمیم اوقات معلوم میشه هیچ وقتی قرار نداشته از ساعت هفت تا دوازده نمی رفت وقتش تا نبود شب و روز همیم اوقات یعنی در همه اوقات همه سات ها اما اونها چیکار کردند؟ فلم یزدهم دعای ایلا فرارا دعای من نه در آنها مگر فرار همه شون رو پیمان پشت میدادن و فرارشون چی بود؟ بیان فرار. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم همانا من هرگاه اونها دعوت دادم تا ببخشی اونها را هدف پیغمبر سبحان الله هدف پیغمبر خیرخواهی از دل سوزیه پیغمبر میخواد که همه بخشیده بشند همه از عذاب جهنم نجات بیابند همه برم به بهشت خدا لی لهم لعهم تا که تو اونها را ببخشی اونا چی کار میکردن جالو اصابعهم فی آذانیم آنها قرار دادن انگشتان خودشان را در گوش عایشان و استغش و ثیاب آبهم و خودشان را بر خود انداختند یعنی خودشان را به وسیله لباس پوشیدند لباس را به سر و گردنشون انداختند که منو نبینم من انها را نبینم و اصر و استقبال و اونها اصرار کردن بر کفرشان اصرار کردن بر شرکشان و استکبر استکبارا و تکبر کردن تکبر بسیار بزرگی اما بر, بر اله من نامید نا نشدم من روش دعوت را عوض کردم یک داعی باید روش دعوت خودش را بر اساس شرایط مردم شهرش باید عوض بکنه گاهی در روز مردم همیش مشغول کاروبارند، شب بیکارند، شب دعوت بده، روزهای تعطیل دعوت بده، گاهی دعوت عمومی بده، گاهی دعوت خصوصی بده، گاهی انفرادی، گاهی اجتماعی، صورتهایی که اهل دعوت ما دارند، اللہ فرماید، اینا همه از در واقع رویش نوح گرفته هستند، ثم اینی دعوتهم جهارا، سپس من اونها را الانی دعوت دادم جلو همه هم گا هم دعوت دادم ثم انی اعلمت لهم و لهم تلهم اسرارا سپس من برای اونها ظاهر کردم یعنی دعوت اجتماعی و اسرر لهم اسرارا و مخفی کردم برای اونها مخفی کردنی یعنی هم دعوت انفرادی دادم هم دعوت اجتماعی دادم اون اولی این دعوتم جهارا دعوت فقط قاچاقی نبود مخفیانه نبود بعدا علنی شد دعوت در این دعوت چی میگفت نو علیه سلام فقل استغفرو ربکم من بیانان گفتم مغفرت بتلبید از ربتان مغفرت بتلبید از ربتان که شرک نکنید انهُ کان غفارا همانا اون پروردگار غفار هست بکسرت بخشاینده می بخش شما را یورسیل السماء عليكم مدرارا آسمان را بر شما می فرستد مدرارا یعنی بکسرت ریزان خیلی آب می ریزه بر شما رحمت و باران می رزه و یمدد کم بأموال و بنین و الشماره یاری کند با مال و اولاد و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا و قرار میده برای شما جنات و قرار میده برای شما نهرها یعنی باغتون زیاد میشه آبتون زیاد میشه آبادی و شادابی زیاد میشه در صورتی که استغفروا ربکم ببینید اینجا در واقع یک نسخه خوبی گیر من اومد یا به تعبیر دیگه بگم یه تعویزی هست که به این تعویز عمل بکنیم این تعویز اینه کسی میخواد که در مالش برکت بیاد در تجارتش برکت بیاد در زراعتش برکت بیاد در گله و گوسفندانش برکت بیاد در اولادش برکت بیاد در همه زندگیش برکت بیاد اینجا آمده فقل توستغفیرو ربکم استغفار اما بعضی از ما این را چکار میکنیم میگیم که خب اگر میخوایی که رزق زیاد باشه استغفار زیاد بخونم بعضی فقط به زبان استغفار میخونیم من این نکته را میخوام برجسته بکنم اینجا که به زبان بر استغفار خواندن تنها کفایت نمیکنه. کنه بعضی ها هستن که در عمل استغفار ندارند در زبان فقط استغفار دارند توبه بر, بر لب صبحه بر کف دل پر از ذوق گناه توبه میکنه تسبیح هم به دستش هست ولی در دل اون عشق گناه موج میزنه معصیت را می آید از استغفار ما این استغفار به درد نمیخوره اون استغفار به درد میخوره که واقعا انسان دست از گناه بکشه اون استغفار ببینید انقلاب ایجاد میکنه اون استغفار زندگی شما را متحول میکنه از این ور به اون ور میکنه یعنی انسان هم در عمل خودش استغفار را بیارد ترک گناه بکند ترک معصیت بکند ترک تمام اشتباهات ترک لحوالعیب تقوار کامل بگیرد و بعد به زبان هم بار بار استغفار بخواند. بعد این پیامدها این اون چیزی هست که خداوند عزواجل به روایت از پیامبر خودش نوح علیه السلام که نوح برای قومش تبلیغ کرد و این تبلیغ از طرف خدا بود برای منو برای من و تو هکایت میکنه الله فرماید من به انها گفتم استغفار بخوانید و از رب مغفرت بتلبید اون رب بخشاینده هست آسمان رب شما بکثرت میریزد یرسل السماء علیکم مدرارن مدرارن گفتم مفعول مطلق یرسل هست من غیر لفظی ای یرسل السماء علیکم ارسالن زیاد آب بارم ويمددكم ده ویمدد کم بی اموال و بنین و یاری می نصرت شما ربا مال و اولاد ویجعل لكم جنات برای شما باغات قرار میده ويجعل لكم لکم انهار برای شما نهرها و جوی بارها زیادی مالکم لا ترجون لله و ای قوم چی شده شما را لا ترجوره یعنی لا تعتقدونه چرا اعتقاد نداری برای خداوند عظمت را وقار یعنی چه عظمت ببین واقعا مشرک خدا را عظیم نمیداند خدا را و یک انسان را مثل هم میداند هم خدا را سجده می کند هم انسان را سجده می کند هم برای خدا تواف می کند هم دوربر قبر او تواف می کند هم برای خدا گوسفند میکشد هم برای او گوسفند میکشد این برای خدا هیچ وقاری قائل نیست وقار و عظمت برای خدا اینه که اون جایگاهی که به خدا میده به هیچ مخلوقی نده سجده اترا فقط برای او انجام بده رکوع استرا برای او انجام بده صدقیت را برای او انجام بده توافت را برای او انجام بده هر کاری دعا و فریاد را برای او بکن کسی دیگر رسیدار نزن این هست وقار این هست عظمتی که باید انسان برای خدا قائل بشه و ما قدر الله حق قدره الله در قرآن گلایه می کند که بندگان من حق قدر من نمی دانند حق عظمت و جایگاه منو نمی دانند مرا با انسان ها برابر می دانند مرا با مخلوقات برابر می دانند این مخلوق هم علم غیب داره خدا هم علم غیب داره مخلوق را هم سجده میکنه خدا را هم سجده میکنه مخلوق را هم یا فلان میگه خدا را هم میگه یا الله یعنی چه مالکم لا ترجون لله وقارا چه شده شما که برای خدا عظمت قائل نیستید خدا را اون جایگاهی که باید اون جایگاه رو به خدا بدید چرا اون جایگاه رو چرا این اعتقاد رو ندارید در حالی که ببینی خداوند شما رو چطور آفرید و قد خلقکم اتوارا شما مگر این خدایان باطل آفریدند و قد خلقکم اتوارا شما الله عز وجل انواع مختلف آفرید به اقسام مختلفی آفرید الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا این دلیل آفاقی است اللہ می فرمانی نمی بینی چگونه خدای عز و آفرید هفت آسمان را تبق به تبق درجه به درجه و جعل القمر فيهن نورا این دلائل که شما خاندید نو علیہ السلام این دلایل را برائی قوم بیام میکنه و جعل القمر فيهن نورا مهرہ در اینها قرار داد باعث نور و جعل الشمس سراجا اما خورشید را چراغی ببینید امروز دانشمند دنبال کرده و کشف کرده که نور ماه از نور خورشید گرفته میشه اما 1400 سال پیش وقتی که این آیات نازل شدن در اون زمان خداوند این اشاره رو فرموده سراج در زبان عربی بناه چراغ به اون چیزی میگویند که از خود روشنی داشته باشه از خود نوری داشته باشه اما نور به چی میگویند به او میگن که از چراغ میگیرد. به اون چیزی میگه الان در مسجد مثلا نور هست. این نور را یا از خورشید میگیره از این ها این لامپا و خورشید سراج هستند. لذا خورشید سراج هست. ما چیه؟ همونطور که زمین نور را از خورشید میگیره ما هم نور را از خورشید میگیره. به این خاطر ما را هر جا میفرماید نور و خورشید را میفرماید سراج. والله انبتكم من الأرض نباتا خداوند رویاند شما را از زمین رویاندنی یعنی شما را از زمین خلق کرد و بعد رزق شما را هم از زمین فراهم کرد برای شما ثم يعيدكم فيها سپس برمیگرداند شما را در این زمین و يخرجكم اخراجا در روز قیامت از همین زمین شما را مجددا بلند میکند لذا این همه خدا کرد ای قوم چرا شما درس نمی گیرید مگر خدایان یعنی شما این کارها را میتونم بکنند؟ و ببینی خدا چه نعمت های دیگری برای شما فراهم کرد؟ والله جعل لكم الأرض بساتا خداوند زمین را قرار داد برای شما بساتی فرشی لتسلکو منها سبلا فجاها تاکه ببرید در آن زمین منها یعنی فیها راهای کوشا دی راهای در زمین برای خودتون درست میکنید. راه گشاده راه ماشاءاللہ اتوبان که ده تماشین هم زبان رد میشه لذا اللہ تعالی این زمین را در اختیار شما گذاشت هر نوع راه و هر چیزی شما برای خودتون درست میکنید چرا این خدا را سپاس گذار نیستید بالاخره نوح علیہ سلام این همه تبلیغ را کرد و تا اینکه آخر شکایتون هر پیش خداي عز و جل میبرد. قال نوح رب إنهم عصوني نوح به پروردگار گفت رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي أي رب همانا این قوم مرنا فرمانی کرد و تبعو مَلَمْ يَزِدُهُمْ عَلَوَهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَةَ انها بجای اینکه ان از من پیروی کنند پیروی می کنن از اون انسان های متکبر اون انسان هایی که لم یزده ماله مال او در اون وولد او نیفزود در اون الا خساره مگر خساره مگر زیان را یعنی کسانی که مغرور مال اولاد خودشون هستن اینها در واقع تابع انها هستن فرمانبر اونها هستن و مکرن مكر کبارا اونها توتعه کردن توتعه های بسیار سنگین و بزرگ بر علیه دین بر علیه پیامبر بر علیه توحید لذا اونها به پیروانشون چی گفتند؟ و وقالوا لا تذرون آلیهتکم انها گفتند ترک نکنید معبودان خودتان را به پیروان خودشون گفتند معبودان خودتون را ترک نکنید کدوم معبودان؟ ولا لا بالخصوص ترک نکنید ودن ولا سواعن نودره نسواعره نیاگوسره نیاگوکره ننسرد پنج نفر بودند قبلا دربار اینها مخان دیم تحقیق که اسماء الرجال صالحین من قومی نور انسان انسانای صالحی بودند بند قبلا هم خدمت شما عرض کردم که اکثر مشرکین دنیا بط پرست نبودن انسان پرست بودن ولی پرست بودن صالح پرست بودن اینا صالح بودند،, صالح بودند انسان های صالح بودند در زمان خودشون بعد از اینکه مردند مردم بط اونها را درست کردن مجسمه اونها درست کردن ولی هدف مجسمه نبود این مجسمه را نمادی میدانست از اون صالحی که فوت کرده پس در واقع به زعم خودش اون صالح را عبادت می کرده. پس گفتن که انها نگذارید این پنج نفر را انها را یعنی عبادتشون را ترک نکنید همون متبوعین میگفتن رؤسای کفر و شرک به پیروان خودش میگفتن و قد كثيرا کثیرا و همانا انها گمراه کردن بسیاری از مردم را لذا پروردگارا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ در ظالمین نافزا اضافه نکن مگر گمراهی را منظور از گمراهی چیه منظور عذاب است چون گمراهی سبب عذاب میشه یعنی ظالمین را دیگه بیشتر از این مهلت نده عذابشون بده الله عز وجل میفرماید ببین عذاب را خدا اینجا تعیین میفرماید فرماید مم ما اغرقو بسبب اغرقوا به سبب گناهانشون و خطاهاشون اونها غرق شدند این عذاب دنیاست خدای از و جل چکار کرد؟ در دنیا عذابشون داد فا خلو نارا پس فورا داخل آتش شدن این عذاب قبر است عذاب برزخ است چرا؟ چون فا ادخلو این فا فای تعقیب است یعنی پشت سر اون غرق وارد آتش شدن آتش جهنم که تازه میاد پس معلوم شد در قبر هم اینها عذاب داده می شوند در قبر هم برایشون آتشی هست و این را هم خدمت شما ارز کردم که قبر قبر دو, تا دو جا هست یک قبری که ما حفر می جسد را این قبر یک قبر مجازی هست قومینو همه غرق شدند و کسی اونا را دفن نکرد اونا را خدای عزواجل محو کرد تو این زمین اما روح که میره به عالم برزخ در کالبود یک جسد مثالی قرار میگیرد یک جسد موقتی اونجا روح عذاب داده میشه اونجا روح کباب میشه روی آتش و اون اثر عذاب روی جسد هم قرار میگیره جسد هم متاثر میشه از اون عذاب پس ما معتقدیم عذاب قبر هست این آیات اشاره میکنند و این عذاب قبر فقط مال روح نیست مال روح جسد برای هر تا هست لذا می فرماید اغرقو فا ادخلو نارا فوراً وارد آتش شدن فی عالم البرزخ تفسیر مذاری نوشته المسمع بالقبر در عالم برزخ همون عالم برزخی که اسمش قبر است چونکه رسول الله فرموده اللہ مقازی صنع اللہ می فرماید که فانه روعه من رياض الجنه او حفره من حفرات النيران هم عالم برزخ اونجایی که قبر اصلی هست دليل على اثبات عذاب القبر لان الفعل التعقيب بس این آیه دلیلی بر عذاب قبر فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا انها برا خودشون الله نوح الرب لا تذر مناجات که خدا عذابتشون داد این مناجات را کرد وقال نوح نوح گفت رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا بار اله نگذار بر زمین از کافران هیچ خانه را هیچ اهل خانه را روی زمین نگذار همه خانوادها و خانه های کفر را نابود بگردان از کردم چرا؟ اون سوال مطرح میشه چونکه اون نوه می دونیس دیگه ایمان نمی آورن خدا بهش گفته بود این نکه این تدارکم اگر همانا اگر تو اونها را بگذاری یو ذلوا عبادت جمراه می کنم بندگان ترا بندگان ترا چکار می کنن گمراه می کنن ولا یلیدو الا فاجرا کفارا و اونها نمی زایند بی دنیا نمی آورند، مگر انسان های فاجر و فاسق و ناس خب نو از کجا می که هر هرچی از این بار متولد بشه هم کافره چون اون آیه نازل شده بود لن یؤمن من قومک الا من قد آمن ولیزا نو علیه سلام و السلام آخر دعای برای خودش و برای والدینش و برای مؤمنین رب بغفر لی رب اغفر لی ولی والدی بار اله من ببخش و پدر و مادر من ببخش و لمن دخل بیتی مؤمن و هر کسی که داخل خانه من میشه در حال ایمان با ایمان داخل میشه اون هم ببخش ولی المؤمنین و المؤمنات تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن را هم ببخش ببین تمام مردان و زنان مؤمن را گاهی مفسرین الله رحمتشون بکنه از لابلای بعضی از آیات نکاتی استخراج میکنن و نکاتی برداشت میکنن که انسان امیدوار میشه اینجا علامه آلوسی یک مطلبی بسیار زیبا را استنباط میکنه میفرماید که ببینید نو علی الصلاۃ والسلام دو, دو تا دعا کرد یک دعا برای نابودی و هلاکت قومش اون دعا پذیرفته شد و یک دعا دیگر برای مغفرت اهل ایمان نه اهل ایمان زمان خودش مطلق گفت وللمؤمنین والمؤمنات اون که مال زمان خودش بود ولی من دخل بیت مؤمنا هست بعد از من تمام مومنین و مومنات عالم برای همه ببخش حال اللہ ما آلوسی می فرماید که شما نظرتون چیه خدا اون دعا را قبول کرد دومی را قبول نکرد اولی را قبول کرد کفار را حلاک کرد دومی را هم خدا قبول میکند دومی را هم خدا یعنی امیدوار باش ای مسلمان که نوح پیامبر هم برای تو دعا کرده وقفت خدا يا تمام مؤمنين ومؤمنات را ببخش ببعضة علوسية بسيار زيباس وقد دعا عليه السلام دعوتين نو عليه السلام دوتا دعا كان دعوة على الكافرين ودعوة للمؤمنين يكبر اي كافرين برعليه كافرين يكبر في مؤمنين وحيث استجيبت له الأولى وقت كي شو شد دعا أول كفار خدا نابود كان فلا يَبْعَدْ أَنْ تُسْتَجَابْ لَهُ السَّانِيَةِ بید نیست که دومی همچی شده اجابت شده چرا چون والله تعالی اکرم الکرمین اللہ تعالی اکرم الکرمین هست دعای پیغمبرش را برای کفار قبول می در حق کفار اونا را نابود میکند آیا دعای پیغمبرش را در حق مومنی قبول نمی حتان میکند لذا نوح علی السلام دعا کرد این پیغمبر عظیم الشان که خدایا منو ببخش پدر و مادرم را ببخش هر مؤمنی که وارد خانه میشه ببخش و بعد از اون تمام مؤمنین و مؤمنات را هم ببخش ولا تزد الظالمین الا تبار و در ظالمین اضافه نکن مگر تباهی را حلاکت را یعنی کفار مشرکین را بیشتر از این نگذار همهشون را هلاکو نابود بگردان صدق الله مولانا العظیم